تابلوی خانه‌های راایتی تا پس از حوادث شهریورماه ماه در بود. اغلب کسان و دوستان و استاد هم آن را ندیده بودند. سه سال پیش در شهریور من آن را درآوردم و در قاب گذاشتم و آن را آویزان کردم. در این پرده نفرت و انزجار و استاد از آنچه در دوران دیکتاتوری رخ رو میداد روشن و آشکار جلوگر است. استاد یکی از خانه‌هایی را که در کنار جاده‌های مازندران مالک جدید آن استان به پول مردم و برای رؤایا میساخت ساخ نقاشی کرده است. شبه خانه دهقانی در قسمت عقب پرده در محتاب کمرنگ دیده می شود. خانه نوبنیاد و آراسته است. در این حال در نور تیره شب شوم و وحشت زده تاریک به نظر می رسد. بر قله کوه پوشیده از جنگل، روشنایی خفیفی محسوس است و طبیعت زیبای مازندران را یادآوری کند. مزارع برنج در تاریکی شب درخشان و فرح بخش هستند. در قسمت جلو، دهقان پیر و پسر جوانش پاهای خود را که مانند نیم سیاه و کدر هستند، روی شعله آتش گرفتند. قیافه رنج کشیده پیرمرد از لذتی که گرمی آتش نصیبش ساخته می درخشد. اما نگاه وحشت زده پسر دهقان متوجه آن طرف پرده است. آنجا پیر زنی با تنابی که در دست دارد گاوه لاغر و نیمه جانی را به زور می کشد. دیگر حیوان رمقی ندارد و سرمای اول بهار دارد او را از پا در سایه بزرگی کنار آتش روی زمین خوابیده سرش را نیمه بلند کرده است گویی او هم متوجه اتفاق ناگواری که رخ دهد شده است فرانگیز چند دقیقه به او نگاه کرد و بعد کمی بیشتر فاصله گرفت تا از دور آن را بهتر تماشا کند پس پسکی می آمد و به بخاری وسط تالار نزدیک میشد. گفتم خانم متوجه باشید به بخاری نخورید ملتفت هستید که استاد در تابلو چه حکایت میکنند. شما بفرمایید. دیگر شیرین زبانی از یادش رفته بود. معلوم بود که من مرعوبش کرده بودم. دلم میخواست شما میگفتید که چه فهمیدید؟ من چیز زیادی نفهمیدم. میخواهید برای تان بگویم؟ استعدام میکنم. این خانه های است به روایا گفته بودند که خانه باید همیشه پاک و شست رفته باشد. مخصوصاً اوایل بهار که علا حضرت به مازندران تشریف می بردند. هر روز معمولین املاک به خانه ها سر می‌کشیدند که مبادا آلوده باشد. در اون گوشه تابلو آن برامدگی که مشاهده می‌فرمایید خرابه کومه سابقان هاست. نه آنجا طویل برای گاو و مرق خود درست کرده بودند. و ترسین ترس که خانه های نوبنیاد را کسیف و آلوده نکنند خودشان هم در زمستان آنجا زندگی میکردند اکنون هر روز انتظار شاه را دارند معمورین آمدند و کومه ها را خراب کردند که دیگر در آنجا به سر نبرند چاره اینیست نیست جز این اینکه در همین خانه های زندگی کنند منتها برای برای حشمشان طویله وجود ندارد و حیوان دارد از سرما و بیجانی سخت می شود هر گوشه این پرده برای شما داستانی نقل می کند طرف چپ در قسمت جلو قسمتی از خانه دیگری توجه شما را جذب می کند در پنجره این خانه یک سماوار برقی و دو سه تا چراغ حبابدار می بینید. نگاه کنید چطور زده آساد آنها را ساخته یعنی دیخانان در ناز و نعمت به سر می برند را در اول بهار معمول املاک با آنها گرو می دهند که شاه هنگام عبور آنها را ببیند موقع پرداخت پول این اساسی امانتی از دیخانان کم گذاشته می شود به همین جهت گاو دیگر رمقی ندارد پسر دهخان متوجه بلایی که دارد به سرش می آید هست و به آن سو نگاه می کند اول بهار فصل کار و آبیاریست دهقانان باید با پای لخ در برینزار کار کنند در خانه وسیله گرم شدن ندارند نگاهی به این سگ باوفا بیاندازید او هم دارد به پیرزن دهاتی که شاید مادر این جوان است نگاه کند شاید اول همین سگ متوجه بلا شده و صاحبش را آگاه ساخته است آقای نازم این پرده اصل است یا بدل این پرده اصل است شما می توانید عصر را از بدل تشخیص دهید تا اندازه ای. پس چطور گفتید که کسی نمیفهمد؟ من میفهمم کار که همیشه در دست من نیست. پس دست کیست؟ دست مدیر مدرسه، دست وزیر وقت، دست جواب مدیر کل. اگر کسی بخواد که از پردای عصر را به دست آورد به کی باید رجوع کند؟ جانی گرفتم. داشتیم به هم نزدیک می شدیم. آن حالت ساختگی داشت از بین می رف. فرنگیس احساس کرد که من می توانم به او کمک کنم. نقشه که پیش خود با شتاب کرده بودم داش عملی می شد. تا کی باشد خانون. اگر من باشم شما که هستید؟ من زنی که چند روز بیشتر در تهران نخواهم ماند و هیچ کس را در این شهر ندارم. پدرم آدم هر دو از ایران خارج شدند و اگر رفتم شاید مرا هرگز نبینید. کدام تابلو را می خواهید؟ آن تابلو که من می خواهم در این اتاق نیست. کدام تابلو؟ اول بگویید که می توانید خواهش من را تا بعد بگویم که کدام تابلو را می خواهم. بسته به این است که شما می توانید زحمت من را جبران کنید یا خیر؟ اگر شما تابلو چشمهش را که باید آنجا باشد و حالا نیست به من بدهید من 5000 تومان به شما میدهم. با کمان مهارت و زبردستی که با آن خود را آماده کرده بودم باز هم قافلگیر شدم تصور نمیکردم که این زن با چنین جرأتی پیشنهاد دزدی به من بکند چند لحظه مردد بودم این چند لحظه برای من زمانی بی پایان بود سکوت من زن را ترساند. من میدانم که این پول را شما برای خودتان نمیخواهید میدانم که باید به وزیر و مدیر کل بدهید برای مرا وادار به دزدی میکرد؟ آیا فقط برای اینکه تصور کرد که اینجا دز بازار است و هرکه هرچه هست و من هم در این جنایت شریکم و یا اینکه ترسید اگر بار دیگر به این موزه بیاید از این تابلو اثری نخواهد بود. یعنی که علاقه به پرده چشمهایش به او جرأت داد و به من پیشنهاد دوزی کرد و وقتی فهمید که میتوان آن تابلو را برای همیشه نزد خود داشت تصمیم گرفت که شاهکار استاد را رو باید و به خانه ای ببرد اما چه جورتی؟ چطور از کجا آنقدر گستاخ شد که شرافت مرا فقط در مقابل پنج هزار تومان بخرد؟ فقط پنج هزار تومان؟ ده سال از که من در این مدرسه خراب شده پشت این میز لکنته نشستم و با وجود دوزی ها ناتوانی خود که نسبت به مسئولان و وزیران داشتم رو تحمل کردم. نگذاشتم یک صفحه خط استاد بیرون برود و حالا این زن که معلوم نیست از کجا آمده از چه راه پالتوی شیک تن و اتومبیل شیک زیر دارد آمده از شرافت من را با پنجز زاتمان بخرد. آخ... چقدر دلم میخواست این زن هر ذره را از من بیرون میکردم. چقدر دلم میخواست بگو بگویم خانوم یک بوسته به من بدهید و تابلو مال شما. نه این زن هر جایی مقصود مرا نمیفهمد. دلم میخواست به او میگفتم خانوم یک شب تا صبح در آغوش من باشید تابلو مال شما. از کنار بخاری رد شدم. به گوشه تالار درست رو بره او کنار دیوار مقابل به فاصله‌ای که دورتر از آن در چهار دیوار تالار مایستر نبود رفتم و آنجا روی میز کوچکی که مخصوص دفتر یاد بوده کنندگان بود نشستم پاهایم روی هم انداختم دستم را چانه گذاشتم و به خیره نگاه کردم رنگم پریده بود تمام مقوع و قدرت معنوی خود را جمع کردم و تصمیم گرفتم خانم فقط پنج هزار تومان شما مافقت کنید که پدر رو به من بدهید هرچه چه بخواهید خواهم داد هرچه چه بخواهم خواهید داد چشمانش برف روخته شد غضب کرد؟ نمیدانم من تمام تارهای روح این زن را یکی یکی می شناختم. ساعتی بیشتر پیش من نبود من با این لب و دندان و گونه و پیشانی و چانه همچنان که اجزای صورت خودم را شناختم آشنا بودم ساعتهای پی در پی آنها را مطالعه کرده بودم سالها آنها را روزی چندین مرتبه دیدم فقط چشمها برای من مرموز بود اما این نگاه غضبناک را تصور نمیکردم این نگاه شبیه به نگاهی که نیم ساعت پیش دل مرا آب کرد نبود این نگاه یک حیوان گرسنه بود شاید هم قصدش تحقیر من بود اما این حالت چشم فقط یک ثانیه طول کشید در بهله اول معنای جمله را آنطوری که در من در نظر گرفته بودم ادراک نکرد اما بعد فقط به اندازه یک چشم هم زدن معنای دومان را پذیرفت. به طرف من آمد و باز معدب و مهربان گفت هر مبلغی که بخواهید میدهم آم من پافشاری کردم باز گفتم هرچه بخواهم میدهید این بار با لحن دیگری گفتم که بیشرمی در آن نبود میخواستم از او قول بگیرم که آنچه من میخواهم بدهد او را ترساندم اما خودم هم ترسیدم با قدم های تند آمد مقابل من ایستاد خشمالود به من نگاه کرد با چشمهایاش میخواست در عمق روح من رخنه کند. خیال کردم میخواهد من را بزند. بلند شدم و استاد آن خیره به اون نگریستم. این بار حالت چشمان شبیه به همان حالت مرموز و پرمعنایی شد که استاد در پرده ثبت کرده است. حالا فهمیدم که چرا ها در تابلو استاد معنای گوناگونی دارد. چرا گاهی انسان را می‌گیریانند و گاهی از همه چیز بیزار می کند یک قدم دیگر آمد و گفت: بله هرچه چه بخواهید میدهم. به شرط که بیشرمانه نباشید قبول کردم نشانه خانه را رو به من بدهید امشب آن را به خانه شما خواهم آورد چرا همین الان نمیخواید آن را به من نشان بدهید؟ بالاخره باید معامله انجام بگیرد چرا نمیخواید همین الان انجام بگیرد؟ همینجا به من نشان بدهید همه که نباید متوقع میل شما باشد بگذارید یک بار در زندگی با مردی روبرو شوید که از شما استخواندارتر استغان، تر است. شما تصور نکنید که حیثیت و شرافت من را با پنج هزار تومان میتوانید بخرید. من به شما قول میدهم که تابلو را امشب به خانه شما خواهم آورد. از شما یک شاهی هم پول نخواهم گرفت. آنجا تقاضای خود را به شما خواهم گفت. ببخشید من رفتم. منتظر شما هستم. هر وقت که خواست بیایید. تنها این جمله را سمیمانه و خالی از تصنع ادا کرد. مقلوب شد. مقلوبش کردم. از وقتی که با من روبرو شد این نخستین بار بود که خودش را به من نشان داد. من مس پیروزی بودم. دیگرش این زبانی در کار نبود. نقاب از صورتش افتاد و چهره کریه نه. چهره کریه نداشت. چهرهش را به من نمایان. نشانی خانهاش را گرفتم در یکی از هایی که از خیابان پشت سفارت انگلیس می میشد منزل داشت او را تا دم در حیات به مدرسه مشایعت کردم در اتومبیلش را باز کردم و وقتی خاک خیابان به هوا برخاست به مدرسه برگشتم